وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَانِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين و وصحبه اجمعين اما بعد اشهد أن لا إله إلا الله واشهد اشهد أن محمد عبده ورسوله رسوله توحيد دربا إن شهادتين آغاز شهادت ان لا اله ایلالله و شهادت و گواه بر اینکه محمد رسول خداست با این درسمون رو آغاز کردیم بعد رفتیم به لازمه ایمان به خداوند و ایمان به پیغمبرش رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان به قرآن لازمه اون ایمان ایمان به قرآن بود کلام خداوندی که برای هدایت بشریت خداوند فرستاده بود بعد از اون رفتیم به اینکه ما محتاج پروردگاری ما نیازمند خداییم اگر خداوند ما را مکلف ساخته که او را بپرسیم و از پیغمبرش از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنیم به خاطر دلسوزی به خودمون بوده به خاطر رحم به خود بشریت بوده از صفت الرحمن الرحیم خداوند سخن گفتیم الان یکی از مطالبی که ما داریم بحث این است که خداوند بر هر کاری قادره خداوند عالم بود خداوند حکیم بود در کاراش کاراش مشکمه و خداوند قادر بر هر کاری هست عظمت خداوند را ما در شرق و غرب در خودمون در کوه در حیوانات عظمت خداوند را ما میبینیم هر حیوانی را خداوند یک جوری خلقت کرده هر مخلوقی را خداوند یک طوری خلقت کرده اونم به خاطر اینکه ما توازن خودمون رو در زندگی خودمون از دست ندیم زندگیمون منظم اداره بشه کوه ها رو میبینیم بلندن کوه ها رو میبینیم که هر کجا یک تیکه از اون کوه هست هیچ کدوم از این کوه ها توازن کره زمین را به هم نمیزنه خداوند طوری کوه ها قرار داده که زمین منظم حرکت بکنه دور خودش بچرخه خداوند کوها را طوری قرار داده که زمین با سرعت خاصی حرکت بکنه. بله بی حکمت نیست خلق, آف خلق آفرینش خداوند خداوند در هر کاری در هر آفرینشی خداوند حکمتی داره کار خدا محکم بی ای خداوند در بحث کوها میگوید خلق السماواتی بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی انتمید بکن خداوند آسمان ها را بدون ستون آفرید یک ستون خداوند قرار داد که سخف و آسمان به پایین نیاد خداوند آسمان را تاری قرار داد که هیچ ستاره و هیچ سیاره و هیچ شهابی با زمین برخورد نکنه که این توازن زمین به هم نخوره قبل از این که شهابی به زمین برسه در همون فضا در همون آسمان آتش میگیرد خداوند نمیخواهد توازن این زمین به هم بخوره کی هست؟ که این زمین را در این فضا نگه داشته یک زمینی کربیشک با این همه جرم و حج یک ذره از مسیر خودش دور خورشید خارج نمیشه یک ذره پایین بالا نمیره نه اینکه تنها زمین بلکه تمامی آنچه در آسمان ها هست بله خلق سماواتی به غیر عمد انترانه آسمان ها و هر چیزی که در آسمان ها هست خداوند با ستونهای نگهش داشته که شما نمیبینید بغیر عمد بدون با اون ستونهایی که شما نمی بینید اون ستونهایی که با چشم انسان دیده نمیشه، بله فیزیک شناسان الان می که این ستون های مغناطیسی هست که توسط خورشید تولید میشه که سبب میشه زمین توازن توازن خودش رو حفظ بکنه و ستارگان ستاره، دیگر هم همینطور ولی که جای تعجب است خب زمین توازنش رو حفظ, حفظ کرد با اون موجهای مغناطیسی که از خورشید منعکس میشه به سمت زمین ولی که اون ستارگانی که در آسمان ما میبینیم اون تک تک نقطه هایی که ما میبینیم که ها و میلیاردها بار از زمین بذرند اونها را کی داشته در اون آسمون اونها را کی حفظ کرده؟ اونها را کی در جای مشخصی قرار داده که امشب میره ما میبینیم، فردا شبم هم همون جا اون ستاره را میبینیم؟ کی هست که جایگاه این ستاره را حفظ کرده؟ کی هست؟ و برای کی؟ چرا خداوند؟ چرا خداوند این ستاره را قرار داد در جایگاه خاصی؟ به خاطر اینکه ما اگر شب به جای رفتیم راهمون رو گم نکنیم و به هم یهدون خدا ما ستاره رو گذاشته تا اینکه ما راهمون رو راهمون رو درست ای بکنیم اگر شب به مسافرت رفتیم اگر شب رفتیم دریا با کشتی دنبال ریسق روزی دوباره بتونیم به جای اول بر بگردیم شمال و از جنوب تشخیص بدیم شرق رو از غرب تشخیص بدیم با این ستارهگان غیر از اینکه منافع غیر از این که سودی که ستارگان به ما دارن یعنی سودی که از علمی که ما به اونها از اونها به دست میاریم زیاده مثلا بفرض ما فصل بهار رو از فصل پاییز از فصل تابستون از فصل زمستون راحت میتونیم تشخیص بدیم با همین ستاره‌ها خداوند این علم را بهمون به داده که تشخیص بدیم کی فصلها عوض میشوند کی فلان چیز را کش گندم کش بکنیم یا نمیدونم جو رو کش بکنیم یا دیگر میوه ها و درختان را کش بکنید خداوند برای هر چیزی وقت معینی قرار داده که وقت خودمون رو با این ستارگان میتونیم به دست بیاریم بله خداوند اینها را گذاشت برای ماها این مننت خداونده این نعمت خداونده بر سر بندگان که بندگان قدر خدا را بدونن تا بندگان شایستگی خداوند را به جا بیارن این خداوند از این عظمت از این چیزهای عظیم با این عظمت یاد میکنه تا اینکه بنده فکر نکنه اینها بدون خالقی بودن اینها بدون سبب بودن کسی نبوده که اینها را خلقت بکنن نه اینها همه خالقی داشتن اونم خالقی علیم و خبیر دانا و حکیم که کارش محکم بوده و هیچ عیب و نفسی در کارش نبوده بله پروردگارمان در هر کارش داناست آسمان ها بدون ستون نگه داشته ستارگان را در اون آسمان نگه داشته اون ستارگانی که خدا میدونه چقدر از این زمین ما بزرگترند ولی که در جای خودشون خداوند اونها را نگه داشته کوها را چنانچه در این آیه خوندیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القا في الارض رواسي بر روی زمین کوها قرار داد ان بکنم بكم تا اینکه شما متزلزل نشید تا اینکه زمین شما را نلرزونه تکون نخوره زمین الله اکبر حکمت خودش را خداوند از این آفرینش، حکمت خودش از این ستونهای آسمانی می گوید که, که ستونهای نامرئی که ما نمیبینیم، حکمت خودش را از این کوههایی که روی زمین قرار داده، اون کوههای رنگارنگ، کوهی سیاه و کوهی سفید و کوه قرمز، خداوند از این کوهها صحبت میکنه، این کوههایی که توازن زمین را حفظ میکنه تا اینکه تا اینکه ما نلرزیم، تا اینکه زلزله نیاد، اگر این کوهها به هم بخوره، اگر اون آتششانی که زیر این کوهان هفته است اگر فوران بکنه توازن ما به هم میخوره اگر کوها در زیر خودش در پایین خودش در اون طبقات پایین اگر بلرزه توازن ما به هم میخوره زمین زیر پای ما میلرزه بله خداوند هشدار میدهد گاهی گاهی هم عقوبت خودش را میفرسته همونطور که بر امت های پیشین فرستاد بر قوم لوتو بر دیگر اقوام فرستاد خداوند میگوید این که از به دست منه و هر گاه که بخواهم اگر شما سرپیچی بکنید از دستورات من شما را با این چیزهایی که من به دستارم نابود میکنم دست منه اون کوها را که از پایین بتکون در بیارم و خونه ها و سخف خونه ها بر شما خراب بشه ای بندگان قدر من رو بدونید من بزرگم و قدرتمم قابل وصف نیست هر که بخواهم کنف یکون میکنم شما را نابود میکنم اگر بنده من نبودید اگر حرف من را گوش ندادید من من شما را خلقت کردم که شما بنده من باشید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن و انس خلقنا نکردم مگر برای پرستش و عبادت اگر اگر شما ای بندگان پرستش خداوند را اونطوری که خداوند ازمون خواسته اگر ای بندگان اگر اونطوری که خداوند خواسته انجام ندید اگر اونطوری که خدا خواسته بنده انجام ندهد عقوبتی سختی در پیش هست خداوند بر هر کاری قادر هست در این دنیا نابود می کند و در اون دنیا در آخرت با عذاب های رنگ, رنگ انسان را شکنجه و عذاب می دهد و عقوبت می دهد. چرا؟ چون سرپیشی کرده چرا؟ چون بندگی خودش را ابراز نکرده و خداوند را پس ما باید از قدرت خدا بترسیم. اون خدابندی که با این عظمت این این مخلوقات را خلقت کرده. بدانیم. بدانیم که اگر این مخلوقات عظیما دلالت بر قدرت عظیمی میدهد. خود قدرت اون خدابند بزرگی که برایش تغییر و تحول در آفرینشش چیزی نیست. بگه کن فیکون میشه. غیر غیر قابل رد فرمان خداوند یعنی غیر ممکنه که خداوند فرمانی بدهد دستوری بدهد و اشتباهش است بلکه خداوند بگه کن فا یکون میشه و یکون و خداوند هم برای خودش ملائکه‌ای گذاشته که خداوند از دست اونها می‌دیت لای یعصون الله ما امرهم هیچ وقت سرپیچی از دستورات خداوند نمی‌کنن مگر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه اخراج شدند مگر فرشته کوهان کوها مگر نیمال نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم و نگفت ای محمد ای رسول خدا خداوند من را فرستاده بسوی تو ای, ای رسول خدا اگر میخواهی من کوهای مکه را به هم بزنم و کل مشرکین را نابود بکنم اونجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خیر و آنها مهلت بدهید شاید از نسل اینها کسانی و که بیان که خداوند به بپرستند بذارید اونا را مهلت بدهید بله خداوند ماها را مهلت میده تا اینکه به سوی او بر بگردیم تا اینکه سر به سجدش بزنیم تا اینکه بندگی خودمون را ثابت بکنیم و خداوند اگر به مهلت داده اگر به اون کافرش اگر به اون گناهکارش مهلت میده به خاطر این است که شاید یک روزی به سمت خدا به سوی خدا بر بگردد و رسول الله صلی الله علیه و رحمش رو ما اینجا میبینیم لطفش را اینجا میبینیم در حق اون کسانی که در مکه بودند نخواست با اینکه این همه آزار و اذیتش کردن نخواست که اونها نابود بشن بله خداوند بر این مخلوقاتش فرشتگان و ملائکه ای گذاشته که هیچ وقت عصیان و سرپیچی از دستور خدا نمی خداوند بگه بهشون که کوها را به هم بزنن به هم میزنن انسان باید بترسه از عقوبت خداوند کوها فقط بحث از عظمتش و از اینکه خداوند توازن زمین را به اونها نگه داشته فقط بحث این نیست بحث این است که خداوند در قرآن غیر از این چیزهای دیگه را از کوها برامون نقل میکنه میگه کوها را نگاه بکنید و الجبال تحسبها جامده و هی تمور مر السحاب کوها را نگاه بکنید فکر میکنید جامد ایستادن فکر میکنید ثابت روی زمین ایستادن فکر میکنید که تکون نمیخورن الله اکبر نه تکون میخورن حرکت میکنن با حرکت زمین همانطور که ابر در آسمان خداوند میگوید حرکت میکند با سرعت ایفده، ایشده کیلومتر اون سرعتی که خداوند برای ابرها سرعت متوسطی گذاشته توسط وزش بادها حرکت بکنند اون ابری که در آسمان هست شما میبینید ابر از این طرف از شرق به غرب یا از غرب به شرق وقتی میبینید عبراها حرکت میکنند شما ای بندگان بدونید که این کوها هم همینطور دارن حرکت میکنند بله فیزیک شناسان چینی ثابت کردند و چیین گفتند که زمین دور خودش میچرخه با سرعتی قولهوش 18 تا 18 کیلومتر بله خداوند مثالی میزند از چرخش ابرها همون چرخشی که ابرها همون سرعت متوسطی که ابرها دارن کوها هم دارن اونم با چرخش زمین کوها رو میبینید فکر میکنید ثابتی سادهن خیر ثابت نیستن خداوند میگوید حرکت میکنن با حرکت زمین خداوند از چرخش زمین در قرآنش یاد میکنه با چرخش کوها. کوها دارم میچرخند ای بنده فکر نکنید که این کوههایی را میبینید که ثابت جلوه چشهای شما هستن. فکر نکنید که ثابتن. خداوند زمین را میچرخوند با سرعت منظمی. چرا زمین را با سرعت منظمی میچرخونه؟ تا اینکه بادها وزیده بشن. اگر زمین دور خودش نچرخه دیگه بادی به وجود نمیاد. دیگه فصل ها به وجود نمیاد دیگه زمین نمیتونه دور خورشید بچرخه تا اینکه یک سال طی بشه دیگه فصل بهار نخواهد اومد فصل تابستان نخواهد اومد و فصل پاییز و زمستان هم همینطور دیگه فصل ها نیستند دیگه بارانی نیست که از آسمان بیاد پایین بله این عظمت خداونده باید قدر این نعمت ها را بدونیم و باید شکرگزار باشیم که اگر کفران نعمت کردیم باید بدانیم که عذاب خداوند شدید هست. لا ان شکرتم لازیدنکم لا اگر شکرگزار ای بندگان شکرگزار بودید سپاسگزار بودید قدر این نعمت ها را به جا آوردید و بندگی را رو در ازای این نعمت ها به جا او بردید و گفتید پروردگار را شکر و سپاس از این نعمتات بندگیت را به جا آوردید خداوند بیشتر بهت میدهد درهای رزق روزی بهت باز میکنه ای بنده خدا تو محتاج پروردگاری خداوند میخواهد با چرخش زمین با عظمت این ها میخواد بهت ثابت بکنه ای بنده خدا تو محتاج پروردگاری تو نیازمند پروردگاری تو بنده ای بندگی تو را ثابت بکنه همونطور که بندگی کوه ها را در ثابت میکنه ببینید کوه ها چطور بنده خدا هستن منتظر دستور خداوند هستند تا اینکه کی خداوند بهشون بگه آتش بشه که بشه یا زلزله ای ایجاد بشه که هر وقت خدا بخواد زلزله بخواد خداوند ایجاد بکنه با اونها بله انسان باید بترسه از عقوبت خداوند و از عذابت خداوند همه اینها به دست خداونده و خداوند میخواد که ما هم همینطور گوش به فرمان خودشان هم باشیم همونطور که اونها گوش به فرمانش هستن از ملائکه گرفته و از کوها هم همینطور ماها باید گوش به فرمان خدا باشیم باید مطیع پروردگار باشیم با قدر این ها را به جا بیاریم ان الله یمسک السماوات والارض والارض ان تزولا خداوند آسمان و زمین را نگه داشته تا اینکه ما از بین تا اینکه ما نابود نشیم آسمانها و زمین را خداوند طوری نگه داشته تا اینکه ماها نابود نشیم خدای نکرده اگر زمین از مسیرش خارج بشه یا ستاره و سیاره دیگری از مسیرش خارج بشه دیگه زمین معنایی نداره دیگه خورشید معنایی نداره همه ماها باید نابود بشیم همه نابود میشوند چرا چون دیگر توازنی نیست دیگه نظم و انضباطی نیست نظم و ها به هم میخورند بله خداوند علیم حکیم انضباطی قرار داده نظمی قرار داده که یک ثانیه هم عقب نمیخوره 24 ساعت روز دقیق با ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هاش با تی بشه نظم داره خداوند در آفرینشش ما هم باید منظم باشیم در نمازهامون نماز صبح رو به وقت بخونیم نماز ظهر رو به وقت بخونیم ما هم باید منظم باشیم ما هم باید حق بندگیم را اجابت بکنیم و ادا بکنیم اون نماز را چنان بخوانیم که خدا ازمون خواسته صلو الله کما را ایتونی و سلی. نماز بخوانیم چران چه من نماز میخونن لازمه گفتیم لاز ادعای لازمه ادعای محبت من فردگاری که این نعمت ها را خلقت کرده این است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروی بکنیم نه تنها کوهها شطور رو نگاه بکنید خداوند میگوید شطوری که با این گردن بلند با این پاهای بلند با این فرش و پهن که خداوند بهش داده با این کوهانی بلند خداوند از هر چیزی که به شطور داده خداوند حکمتی داشته اگر سمها اگر پاهاش کف پاهاش پهن فرش چون شطور در جاها در زندگی میکنه و در اون صحراها اگر پاش باریک بود فرش و پهن نبود پاهاش توی زمین فرو میرفت اگر کوهان نداشت شطوری که اگر،, اگر اون شطور کوهان نداشت دیگه آب را نمیتونست در سهرابی آبان با خودش حمل بکنه. در کوهان خودش در اون کوهانی که خداوند بر کمرش قرار داده شطور آب خودش رو در اونجا نگه میداره. یک کمکمه ای هست یک زرفی هست اونجا در کوهان شطور که آب را در اونجا حفظ بکنه. خداوند چقدر حکیمه؟ اون گردد بلند را بهش داده که چطور بتونه در اون ها از پشت تپه ها مسیر خودش رو کشف بکنه یک چشمه های دقیق بهش داده که در های بیابان خواب توی چشاش نده بله خداوند حکیم علیم خبیره از هر خلقتش از هر آفرینشش خداوند برای اون دلیلی داره برای اون حکمتی داره که ماها شاید بدونیم شاید هم ندونیم افلا ينظرون الی کیف آیه بندگان نمی خداوند که شطور را خداوند چگونه خلقت کرده و الی سمائی کیف رفعت نمیبینند خداوند چطور این آسمانها را برافراشته و الی الجبال کیف نصبت نمی بینن چطور در جایگاه خودش نگه داشته شدن و الی الارض کیف ستحت و چگونه زمین مستح شده که انسان بتونه روی اون زمین از جایی به جای دیگر انتقال بیابه بله تبارکاللدی بيده الملك پاک و منزه هست اون کسی که این آفرینش به دست اوست ملک آسمانها و زمین به دست اوست و هو علا کلش این قدیر و بر هر کاری توانا هست این توانایی خداوند، این قدرت خداونده که خداوند میخواهد در مخلوقات خودش نشون، به،, به،, به،, به،, به همون نشون بده میخواهد دقت آفرینشش رو به نشون بده خداوند میخواهد حکمت اونها رو نشون بده تا اینکه ماها خسته نشیم از بندگیمون تا اینکه ما بتونیم بر نفس خودمون بر هوای نفس خودمون غلبه بکنیم بر وساویس شیطان غلبه بکنیم تا شیطان نیاد بهمون همون وسوسه نکنه که به بگه وسوسه بکنه خب آلا کی تو را خلقت کرده پدرت را کی خلقت کرده تا همین که همین تو رو بره تا خداوند خدا را خدا از کجا اومده ای بنده خدا این مخلوقات خدا را ببین عظمت خدا را ببین این نظم و انضباط غیر ممکنه که بدون خدا و بدون ای باشه ای بنده تو باید بدونی باید باشه. این نظم خداوند در کوها نظم خداوند در آسمون نظم خداوند در حیوانات ای بنده خدا باید تو بدونی این نظم همینطوری به وجود نیمده غیر ممکنه که این مخلوقات تصادفی به وجود بیان خودشون به وجود بیان بلکه باید خداوندی داشته باشن ام خلقون من غیر شیء، ام هم الخالقون آیا احتمال داره که خالقی نباشه غیر ممکنه این شطور و این کوها و این توازن و انزباد در آفرینش بدون خالقی آفرینندهای باشه ام هم الخالقون و ها هم نمیتونن خالق باشن چون انسان قبل از آفرینشش قدرتی نداشته قبل از اینکه ما آفریده بشیم چیزی نبودیم آبی بودیم. هیچ اراده ای از خودمون نداشتیم. ما با اراده ای کسان دیگر از پدران و آب و اجدادمون ساخته شدیم. همینطور تسع سلوار و پی در پی همینطور داریم ساخته میشیم و ما هم میسازیم. بله. ماها باید اقرار داشته باشیم به اینکه باید یعنی گواه بدیم بر اینکه آفرینندگی هست. و هیچ کس هم شک نداشته شما اگر برید ببینید هر قومی هر ملتی برای خودش خدایی داره اون کسی که بت رو میپرسه برای اون بتاش خدای بزرگی را اعتقاد داره از بودایی ها گرفته از هندوست گرفته هر دیانت شما در زمین نگاه بکنید هر کدوم از اینها برای خودشون خالقی دارن خداوند میخواهد بگوید خالق باید باشه و خالق شما هم نمیتونید باشید باید آفریننده پس ما باید با توجه به این نظم و انضباط ها پی ببریم به اینکه ای هست و این آفریننده فقط مستحق پرستشه فقط مستحق که ما صداش بزنیم فقط مستحق که دست به دعاش برداریم فقط مستحق که ما بندگیش را به جا بیاریم سر به سجدش بذاریم و براش رکوع انجام بدیم اون خداونده اگر این خدا این خدای یکتا اگر ما یکتا پرست نشدیم در, در عبادتمون او یک یکتا قرار ندادیم اونجا هست که ما بزرگترین ظلم را انجام دادیم ان شرک لظلم عظی خداوندی که این مخلوقات را با این دقت آفریده تا اینکه ما بهش پی ببریم، حالا که پی بردیم به دقت آفریده به عظمتش، به اسماء و صفاتش پی بردیم، بیاییم اونجا الان بعد مخلوق دیگری را صدا بزنیم، الان چی میخواد بود باشه، چی میخواد انسانی که زیر قبرها باشه، بیاییم کسی دیگه را صدا بزنیم، این ظلم در حق خداوند خداوندی که این همه منت و نعمت بهمون به داد، بعد آخرش بیایم خدای یک را با مخلوق دیگر عوض بکنیم. بله خداوندمون ما باید حق،, حق،, حق،, حق سفاستش را به جا بیاریم یعنی اونطوری که شایسته سه را باید قدرش بدونیم و اونطور نباشه که روز قیامت ما بیاییم و خداوند ما را سرزنش بکنه و بگوید به ماها و ما قدر الله حق قدره بندگان قدر مرا را ندونستن بندگان اونطوری که من شایستهش بودم قدر من رو ندونستن و اون جایگاهی که من داشتم اون جایگاه را سپاس نگفتن و مرا ستایش نگفتن. نگفتن بله قدر خدای من را بدونیم و از این مخلوقات درس و عبرت بگیریم و بدونیم که پشت این مخلوقات خداوندی دانا و قادر بوده که اینها را مسخر ما گذاشته تا اینکه ماها هم مثل آنها سپاسگزار و شکرگزار و بندی حقیقی خدا باشیم. آخر و دعای الله الحمدلله رب العالمین و الله علی محمد و علی آل محمد.